اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و ذات البروج به نام خداوند بخشنده بخشاکشگر سگند به آسمان که دارای برجهای بسیار است و الیوم الموعود و سوگند به آن روز موعود و شاهد و مشهود و سوگند به شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود مرگ بر شکنج گران صاحب گودال آتش اندار ذات الوقود آتشی عظیم و شعل بر ایذ قعود هنگامی که در کنار آن نشسته بودند و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود و آنچرا با مؤمنان انجام میدادند با خون سردی و قصاوت تماشا میکردند. و ما نقمو منهم الا این یؤمنو بالله العزیز الحمید آنها هیچ ایرادی بر مؤمنان نداشتند جز این که به خداوند عزیز و حمید ایمان آورده بودند الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ همان کسی که حکومت آسمان ها و زمین از آن اوست و خداوند بر همه چیز گواه است این الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم فلهم عذاب جهنم و عذاب الحريق کسانی که مردان و زنان با ایمان را شکنجه دادند سپس توبه نکردند برای آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است این الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير و برای کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند باغهایی از بهشت است که نهرها زیر درختانش جاری است و این نجات و پیروزی بزرگ است این شدید. گرفتن قهرامیز و مجازات پروردگارت به یقین بسیار شدید است انّه هو يبدئ و يعيد اوست که آفرینش را آغاز می‌کند و باز میگرداند و هو الغفور و ودود و او آمرزنده و دوستدار مؤمنان است ذو العرش المجید صاحب عرش و دارای مجد و عظمت است فعل و آنچه را می انجام میدهد. هل اتا حديث الجنود آیا داستان لشکرها به تو رسیده است فرعون و فرعون و ثمود؟ بلی الَّذِينَ كَفَرُوا تکذیب کافران در تکذیب حق اند. و الله من ورائه محیط و خداوند به همه آنها احاطه دارد بل هو قرآن مجید این آیات سهر و دروغ نیست بلکه قرآن با است. هست فی لوح محفوظ که در لوح محفوظ جای دارد